گاوی است در آسمان و نامش پربین، یک گاو دیگر نفته در زیر زمین، چشم خردت گشای چون اهل یقین، زیر و زبر دو گاو مشتی خربین. گویند برای من که کمتر خور از این، آخر به چه عذر بر نداری سر از این، عذرم رخ یار و باده صبح دم است، انصاف بده چه عذر روشنتر از این. گر بر فلکم دست بودی چونی از دان و من این فلک را زمیان از نو فلک دگر چونان ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان مسکین دل دردمند دیبانه من حشیار نشد ز عشق جانانه من روزی که شراب عاشقی میدادند در خون جگر زدند پیمانه من